زان سیاست که جان رسید به ناف دیده در کار ماند زهره شکاف سوی بالا دلم ندید دلیر زهره آن کرا که بیند زید دیده بر هم نهادم از سر بیم کرده خود را به آجزی تسلیم در پشیمانی از فسانه خیش آرزومند خیش و خانه خیش هیچ سودم نزان پشیمانی جز خدا ترسی و خدا خانی. چون بر آمد بر این زمانی چند بر سر اون کشیده میله بلند مرغی آمد نشست چون کوهی کامدم زوب دلدر اندوهی از بزرگی که بود سر تا پای میل گفتی در افتاد زجای پروبالی چو شاخهای درخت، پایها بر مثال پایه تخ چون ستونی کشیده منغاری بی ستونی و در میان غاری هر دماهنگ خارشی میکرد خیشتن را گزارشی میکرد هر پری را که گرد می نافه مشک بر زمین میریخت. هر بن بال را که می خارید صدفی ریخت پرز مرواری او شده بر سریر من در خواب سرین میانم بالا سر اینجا سرير تو حاشیه سرین سرین داره سرین, سرین. درست نریه من لطفاً من درو مونده چون غریق در گفتم از پای مرغ را گیرم زیر پای آورد چون خجیرم برکنم صبر جای پر خطر است کاپتم زیر و مهنتم زبر است و پاییز مردی بی وفای... بی وفای مردی کرد با من دمی بدین سردی چقدر از بودث شکنجه من که چنین خورد کرد پنجه من مگر از من زراش برد به هلاکم بدین سبب بس برد. به که در پای مر پیچم دست زین خطرگه بدین توانم رگه خطرگه بدین توانم رفت. چون که هنگام برنگ مرغ رزید مرغ و هر وحشی که بود رمید کسیار، بدیمون کنم که قصه مرد اون بالا قصه پادشاه تیا بالای اون میل و بعض که داشته که دید رفیق نزدیکش با اونهای محبتی که کرده بود اینا آمده و تنافه بالا و و اون پایین رفت این هم زمین آسمون داره احوالات خود شد اینجا یه نفته رو قبلا بگم که الان ما که میگیم میل به نظرمون میاد که مثلا حد اکثر پایش اینقدر باشه یعنی یه, یه چیز آهنیه نسبتا نازوکی باشه که رفته بالا ولی قدیم چیزا رو همین گلدسته ها و برج ها رو برج و بهش می گفتن میل به خصوص در ایالت خراسان بسیاری از این برج ها هست که اینا رو اسمش اصلا میل و اونها هم که در بیابونها در, در میدون در کبیر لاوت خبر دارید که ریگ روان هست خواهی این ریگ روان تا کسی نعیده باشه به با نمیاد واط بیسانه شنای بسیار ریز بر حیوط ریک حالا این بگم اینا مطالبی است که شاید دیگه جایز به بر نخورید ریک به معنی سنگی است که از شدت ریزی از هر علکی هرقدر قد ریز باشه در مید. یعنی سنگی به نرمی گرد از مواسه خیلی ریز در اون رو میگن ریک و یکی از وسائل زرگرها برای سیغل دادن لغره و طلا همین ریگ میگن ریگ زدن اینا اینقدر نرمه که وقتی میمالن روی فلس خش نمیندازی فقط سیغلی اینقدر نرمی و من یادمه که یه سالی با ترن از تاشاه روز بیشتر ترن نبود سالای 25-26 با ترن از راه کبیر میرفتیم تا شاهرود تمام پنجره های قطار بسته بود بسته‌ای که یعنی شیشه بود که اصلا باز نمی‌شد یعنی قابل باز شدن نبود اصلا و کاملا همه بسته بود ما توی کوپه نشسته بودیم من اومدم غذا بکنم دارم زیر دندره هم بریم اینقدر هموز می‌کنم بنابراین ریگ که میگن بعد بعد میاد اینه بر می‌داره که خاره کچولو هست یه مرداری از این گیر میکنه به این خار بعد این همطور میمونه میمونه بزرگ میشه بزرگ میشه صبح بالا میشه اونی که یه کوه که دیشب نبوده الان هست و مردمی که در کبیرگون میشن گاه این ارتفاعات رو نشونه میذارن بعد طرز صبح نشونه نیست این که سرگرده میشه و جای دیگه میگینه نارها در چیز در ایران برای راهنمای مردم بازم در هواشی نه اینکه در دل کبیر در های کبیر که مردم مجبورن از راه کبیر برن میلها برمیکشیدن در اون حدی که دیگه به هیچ نفی ریگی روون نتونه اون رو یعنی ناچار هر قدر هم بخواد کنارش گیر کنه سرش بیرون باشید برای اینکه که از و میل رو که حالا این مایل هم احتمالاً همون باشه در عربی هم هست میل فاصله است می‌دونید که فاصله ها در قدیم وزن ها و فاصله ها انقدر دقیق نبوده اولین اولین مقیاس دقیقی که در دنیا در دوران جدید درست کردن این سیستم متریک لب باقیه یعنی این نمیدونم گلن و نمیدونم و این چیز اینا همه مثل همون من و مزقال و سی و گندم و نخود و از این چیزهای ما همونطوره و همین دلیل هم هست که گلن انگلیسی و گلن امریکایی فرق بکنند این هست که اینا هیچ کدوم دقیق نبود میل دقیق نبوده الان حدود 1600 متر محساب می کنند ولی دقیق نبوده در فرهنگ های عربی برای میل نمشنن که عبارت از مسافتیست یه چشم سالم درست معمولی تا اونجا رو به تو یعنی برد چشم سالم در جای مسطح مقداری که میره بهش میگن یک میل و این میلای توی دارم که می درست به همین ترتیب بوده یعنی پای این میل که می ایستادن کسانی که چشمچار درستی داشتن میل بعدی رو می تونستن پکر. این این میزان مسافت است که به هر حال هیچ لزومی نداره که میل یک چیز نازکی باشه میلایی که تو راه خراسان هست جاهای دیگه هست و آبادی ها هست اینا شاید زیرش اصلا معقبره هست، مثلا سه اتاق هم شد چا پایه شاید به این سالانی که ما نشستیم بیشتر یا کمتر ممکنه باشه و این رو بشه باید میل بنابراین تصور نفرمایید که حالا این میلی که میگن که تا ماه کشیده شد اون این چیز فیلی نازکه باری که نزیر اون که ما امروز میگیم میل احتمالاً نبوده و اونجور میل ها اصلا قابل ساختن نبود در اون روز برای اینکه نده قاعدت از آهن ساخت و قالب گرفتن آهن با این مقیاز ها و با این میار که ما،, ما الان داریم پذیر اصلا نبوده حالا یه قصه یه که آهنی هم هست در هندوستان یه وقت دیگه میگم الان فندازه کافی دیر کردم یه حالا قصه هندوستان نمیخواه من از کنم که خلاسته میگه که من بالا بودم و میگه بالا رو نمیتونستم نگاه کنم تا چه برسه پایینو سوی بالا دلم ندید دلیش زهره آن چرا که بیند زیر من مثل زهره رو دلیلشون گفتم شاید دیدون. دیگه بگم بر دوستان یاد چون بره شاید چون میدونید که زهره از کلمه زهر میان زهر است باهه نسبت یا های نسبت یا تشکی دلیلش اینست که معمولا گذشتگان خیال میکردن که زهر تلقه به حقیقت اینست که در نوات نوات درصد موارد هم راست زهر تلفه برای که اغلب مقاطع سمی آلفالویده هستن، آلفالویده تلقه اما سمومی هست، درهایی هست که بو نداره، رنگ نداره، تهم نداره، خیلی په، هم مولکی، بنابرای این صد, صد است. اما گذشتگان چون زهر رو تلخ میدونستن، این ماده رنگی که عوام بهش میگن زرداب و بسیار تلخه، به دلیل اینکه ماده غلیایز، الکالویده و بدن این رو ترشح میکنه، یعنی کبد در حقیقت ترشخ میکنه اینو برای تحلیل بردن چربی چربی اسیده اسید چربه با این غلیا ترکیب میشه ماده صابونی میسازه اون ماده صابونی قابل جذب در بدن، این زهره اصلا برای. و تلقه این کارش همینه و اگر کبد به اندازه کافی سفرات ترش رو بکنه یعنی سفره خوب ترش رو بکنه میاد به مواد چربی رو جز میکنه اما اگر کبد تنبل باشه کم ترشح کنه اگر کسی که ترشوه صفراش خوب نباشه یک کمی بیش از اندازه چربی بخوره این چربی جذب می میشه و صفرها در معده میمونه صفرها نواد در معده بمونه صفرها میریده در دوازباهه بعد در روده کار خود میکنه ولی چون اون روخانه جز نشده میمونه و روده میزنه پس با سفره و اونا سفره مید تو میده میده هم چون چیزی نیست که قبولش بکنه یعنی فراش خارجی قابل قبول برای میده نیست میزنه میریزیم بیره و حال بابا به با هم میخوره و استفره هم کنه تلخ و زرد که قدیم میبفته این زردا زیاد شده یه چیزی بهش میده این سفرابور. این به عکس زردابش کم شده به دلیل این این اختلالات همه برای این است که صفرای کافی نمیتونه ترشتر بکنه کبدش که چربی رو ببره این که این اختلالات ایجاد میشه به جای صفرابور باید صفرا آور بهش بدن یعنی کاری کنن که ترشتر صفراش زیاد میشه و هر جهت حالا زهره زهره به معنی همین صفراست ولی میدونید که در شعر بری دل و جرأت به کار میره امیدوارم دیگه دلیل اینو بدونید میدونید که در هر گونه تغییر حالت عاطفی ترس زیاد خشم زیاد بدن دچار تشنج و سپاس میشه می به قول ها و گاهی محض ترس خیلی شدید باشه همین فشار میره مهاشا زهره این زرداب میاد توی مهده و معده هم نگه داره بالا میره بعد بابا ممکنه بمیره، میگن زهرش ترکید شید، توی این زهره ترکید، زهره ترکید زهره بر کبه، به دل و جرعت اصلا ارتباطی نداره و این ترس شدید فقط موجب بمیشه که این منقبض بشه، این مزاری بیاد توی معده. به دیگری ممکنه بمیره از ترس زیاد یعنی اون مسئله نیست اما این این این مطلب با اون مردن اعتباط این نداره و ترکیدن کیسه سفره هم ربطی به مردن نداره کیسه سفره هم نمیتریکه اما همین باعث شده که زهره داشتن ببینیه جرعت داشتن و زهره نداشتن ببینیه جرعت نداشتن بیاد خواستم ارتباط این رو برای تون گفته باشم که به چه،, چه دلیل هستیم زهرم رفت یا زهری ترکوندن یا این مطلبش می. زهره یا آن کرا که بیند زیر دیده بر هم از سر بین روشن است کرده خود را به آجزی آجزی با یای مستری یعنی عجز یعنی ناتوان بودن کرده خود را به آجزی تسلیم در پشیمانی از بسانه خیش مرد که وقتی که همچه را میفته یکی دیگر جای خودش میذاره بلند میشه میاد این شهر که این فسل فوزونیشو رو تسکیم میده این مردم چه رو سیاه میشن؟ به تو چه آخه چه سیام سیاه بعد میاد همه این کارا رو میکنه که بفهمی. بعد که میاد وسط راه باید هم این چه ابلهه یه بود من, من, چه, من بود چه کار داشتم من؟ در پشیمانی از فسانه خیش آرزومند خیش رو خامه ی خیش این پادشان نخندیم وقتی برگردی که همه ما خودمون از این کارا بسیار کردیم کم نکردیم همم ارز که کف که کف یه قصه بسیار جالبی چون هست این ناچارم بگم از این قصه از دنباله این جالبتره میگه که وقتی که یوسف برادرانش تو چایم داختن بعد گرفتن و بعد در و بردن و یوسف رفت و بعد عزیزی مست شد خلاصه از ما قصه یوسف اون خواهد بعد شد در کنان و اینور اونور برادر رو آمدن از اون چیز ببرد برادران اونجا گندم ببرن و بعد یوسف تحصیل روز که پیمانه زهری نوزارم تو بار اون برادر مادریش بنیامین چیه برای یه برادر مادری داشته باقشون از مادرای دیگه بودن اون رو نگه دارن به اتحام دوزی بعد برادران ماله و ساری رو که ما همه رو نگاه دارین نگه دارین و این رو نگه ندارین و بعد یوسف میگه که بیاید بیاید اونجا یا دو این جام زرین جلوش میده همین برده هم نشته. بعد میزنه به این جام جرینگی صدا میکنه میگه میدونید که این جام چی بود؟ این خوربون. ما چه هم دوهایی باید با. جام چیگه. و این جام میگه که شمای بردر داشتید. جبانتر از شمای بردر داشتید. علاقه پدرش باز میزنید. میگه که این جام میگه که شما این بردر رو برداشتید به حیله بردین و انداختیش دو چاها بعد باز میزنه میگه بعد راهتیم وزیر و کشتیمو پیرانش رو تونستند. دو تا این سر کرد کرد نیکه هم میزنه هم میزنه حففش دکه ات در منطقه تیده گففش کردیم میزنه که سر میگه بعد ات تار میکنه یک حال نشستی که همش ای به برادرانی روسا رو میگن مردی که اگه واسه تو این تاسو بزنن ده برابر یک قصه داری یک حال نشستی که <تصفح> اون چیگار کردی چیگار نکرد این قسته توست این, این بانگتات قصه توست کردی تا قیامت بزنه و سیاهات احمال فرمش مهم بازم هست و خیلی قصه زیباییست ارز کنم که در پشیمانی از پسانه خیش آرزومن در خیش و خانه خیش ولی هیچ سودم نه زن پشیمانی روز خدا ترسی و خدافانی اینم, اینم ماله موقعی است که با خطر روبرو میشن وقتی که گرفتار میشن و خطر میاد جلو اون وقت میچسبن به خدا میگه ما هم خدا رو شفیه آوردیم و چون برای آمد بر این زمانی چند بر سر آن, آن کشیده میله بلند ما روی آمد نشه هست چون خوبی تا زود به دلدر اندوی مرق عظیم میگه آمد البته این مرقای عظیم به این عظمتی که تو عبسانه ها هست دراماتیزه شده چه این مرقای وجود نداره اما بنده مقاله دارم مقاله دلکشی هست مقاله قشنگیست نه برای که قلم من قشنگی برای که مطلب خیلی جالبه مقاله است به نام بویه پرواز آر بویه یعنی میل و آرزو آرزوی پرواز و بررسی پرواز انسانی است در عالم خیال و به وسائلی که در خیال خودش پرورش داده برای نکنیم خواهر یکی شمه همین دست گرفتن افای مرغ که ما مرغه برش داریم بریتی اینجا نظام می میاری. و این مرغ ها تا اونجای که میدونیم یکی مرغ معروف تاریخی سی مرغه که می‌تونست آدم بردار ببره و بیاره یکی مرغی هست که شاید هم در های عربی از اونجا آمده مرغ به نام رخ که این رخ رو هم میگن که مرغ عظیمی بوده است که مثلا چند نهار تخ نمیزشده، سه چهار نفر دور تخ میشه اگه میز دهدن هم دیگر نمیدیدن نقدر حضورت بوده بود. سنگ بزرگ از پوخسار بلند میکرده میزاده مثلا کشتی رو غرق میکرده و چه چمی کرد چمیکرده افسانه های از این قبیل بر بروره مرغ هم هست و این مرغ نظامی هم هست اما از بحثایل دیگر هم برای پرواز پرخیلی ابداع کردن یکیش بساط عزاد سلیمانی که شنیدید نظاهر خالیچه سلیمان هم هست نمرود ترتیب داد جمشید تختی داشت که دیوان بلند می‌کردند و می‌بردند و وسایل بسیار زیاد دیگه جد ما حضرت آدم سلام الله علیه از بهشت از آسمون فرستیدن زمین ایشونو ظاهرا به همین ترتیب تشویق شدن کره خاک ما هر حال یکی از تصوارات و من اینا رو همه رو جز به جز توی اون مقاله که مقاله در حقیقت رساله ایست برای خودش ترتیب دادم این در مجله ایران نامه چپ شدی اگر دوستان مایل باشن ممکنه باز دوباره زحمت شدو گردن آقای ناصر فل نظامین <تصفح> <تصفح> یه سید بیچاره هم پیدا شده الان بهتون این آدرس اینم میگم برای اینکه این به این دردتون میخوره تون قصه حافظم ناصر پل بزرشته اونجا جایی هست یه دستگاهی به نام مترو پبلیشین ارز کنم که خیابون بنکرافت در بیتلی 24 چهل بنکرافت بایی ارز کنم که صاحبش ایرونیه آقای اسمنام آقای فریدر و این مقاله های نسبتا مفستل و اندر رو بردن گذاشتن اونجا و اون تکثیر کرده و جلب کرده یه چیزی راجبا حافظ نوشتم درباره حافظ به سعی سایه این چاپ کرده و جلب کرد و تکثیر کرده و گشتیم به دوسته دولار میفروشه محصن الاسرار نظامی رو دادیم البته اون برای دانشگاه دادیم تکثیر کرده بود و جلب کرده در می‌فروشه. چاپش افشت رو عرض کنم که یک مقاله نسبتاً مفصلی من درباره حافظ دارم که اون کلاس به چون حافظ میگم اون اونجا آقای پر گذاشته که تکثیر کنند دوستان بگیرن. اگه شما بخواید میتونید همونجا بگیرید این مقاله بویه پرواز رو هم اگه علاقمند باشین میشه یک کاری کرد و گذاشتش اونجا که دوستان حکم رو خواستان برند بگیرند ولی به پیر و پیغمبر ماهی دیناری پی نیستی اصلا. اگه فکر کنید که یک قروم به اون میرسه نمیرسه با تازه من احتیاج بریم که یک نسخم به هم بگم اتخار اونم ندارم چون خودم دارم شما تلفونم احیان داشته من که تلفنش پونست الیاکوت... در یا کد شیستد و چهل و چهار نوزده و خوب فکس هم داره و چهار نوزده چهارده اگه بخواید فکس آقای فریبر این مقاله اگر بذارین اونجا تکثیر میکنه و باید هر هرش انتخابست میکنه میتونم جمعی اگه بشت بگیم که خیلی دواتره برای اینکه بعد یکی میتونه ایرو بگیره یا بفرسه یک چیز رو اگه من خوشحال میشنم که بگیرم برای سون بیارم فقط به من بگن چون که چند که ایدار که یک دارم میگیرم برای سوی خب ارز که چون برآمد بر این زمان چون بر سر آن کشیده میل بلند مرغی آمدش است چون کوهی خامادم زو به دل در اندوهی گفتم بارها که مرغ مطلق پرنده است از بزرگی که بود سرتاپای میل گفتی در اوتاد سجاج پروبالی چو چه شاخ‌های پایها بر مثال پایه‌ی تر چون ستونی کشیده منگاری، بی ستونی یا درمیان قاری، این کلمه بی ستون، اینجور اومده من معنیش رو بگم و تأثیرش بدم برای اینکه هیچ ربطی به ستون و بی ستون اصلا نداره. اون ستون آخرش استان پساوند مکانه استان که بعد در زبان عوامش استون مثل گلستون مثلا گلستون گلستان دیگه اینم بوده بهستان بهستان یا وغستان با غین بغ به معنی خداست بهستان یا فاقستان شده به و بی ستون این است که هیچ رب دستون مداره اینجا جای مقدس بوده مرکز خدایان و اینا می و اسمیتون کنشتن پوه خدایان بی ستون ستونی کشیده منگاری بی ستونی جو در میان گار هر در ماهنگ خارشی میکرد مرقا عادتتون این است که با منغار شنگتن چون می خیشتن را گزارشی می کرد. گزارش اصلا به معنی توضیح و اینا است. ولی یعنی خود چون میجست دیگه جست چون میکرد دیگه بعد جالب این است که میگه که این مرغ خوشبو هم بود هر پریدا که گرد میانگیخت نافع مشک بر زمین میرید بوی خوش نیست که داشته گرد گرد هر پرش که چیز میکردی که میزد گرد میتکنی گردش میتکنی بعد هر پر ایراکی گرد میانگیخت نافه مشک برزمین راجب نافه قبلا نیست که حرف زدن مفصلن نافه گشایی این بازی رو نگفتیم نافه مشک زمین میری هر بونه بال را که میخارید هدف بیریخت پرز این اینا دیگه چیزه اصطلاح تعریف یعنی. چیزه اون شده بر سرین من سرین با یاونون نسبت یعنی بالایی همون که پایین پایین یعنی طرف پا دیگه پایین ضدش هم میشه سرین و این البته غیر از سرینه. که معنی اون انهنای کفل رمگن سرین اون قیر از اینه. این سر سرین پا پاین پا اون, سر اون شده بر سرین من در خواب من در اون مانده چون غریق در آب اینجا تو این نسخه سرین نوشته بود سرین, سرین در خواب نیست نوشته بود من منده بله, بله. حالا خب سرین در نوشته سریری در نوشته با نوشته ولی با پتح اینجا محروم وحید نوشته که سرین به اول طرف سر است بچه هندین جا نظامی این لغت را که هنوز در زبان هموز دولت به شعر آورده عموما در مقام مو مردم در مقام قسم گویم به آن کسی که سرین و پایین او رو نوسیدم یعنی بالا سر و پایین پای مثلا در لیلی مجموع گوید گهریخ سرش بر سرین گنش یعنی بله سرش در شرفنامه فرمایت گیاب اینی از خاک من گیرده سرین سوده پایین فروبی اون شده بر سرین من در خواب من در اون منده چون قریق در آب گفتم من پای مرغ را گیرم زیر پای آورت نه نحجیرم یه پای دست بزن من حس میکنه باید این مرغ به این بزرگی خب منو نیست می شکاری میگیره نفله میکنه پولیسی گفتم اید پای را گیرم زیر پای آورد زیر پاوردن آوردن منیم غلبه کردن و گرفتن و مغلوب کردن و نیسترها چیز کردن زیر پای آوردت را نفجیرم بر کنم سبر جای پرخطر است کافتم زیر و مهنتم زبر است بی وفایی حالا فرنه میره به شکایت از رفیق نمیگه که خب من خودم بخدم که من نشون بده بی وفاییز ناجوان مردی کرد با من دمی به دین سردی نفس به این سردی با من به کار برد یعنی, یعنی, یعنی خیانت کرد در حقیقت چه قراز بودش از شکنجه من که این چنین خورد کرد پنجه من شکنجه به معنی به معنی کارایی است که درش بیم شکستن ازد بره این یعنی نوعی زجر که بیم شکستن داشته باش. در مورد شخصی به نام اپیکتتوس این از فلاسفه رواقی است فیلسوف از پیشوایان مکتب روابی وجود استرویی این میگه این قلام خرید بود این ارباب ابلهی هم داشت یه روزی این اپیکتتوس شکنجه می کرد قبلا بگم که جزء جزء اصطلاح اصول مکتب رواقی است که فیلسوف رواقی باید در همه حال آرامش خودشو حفظ کنه یعنی در مصائب خودشون نبازه و در خوشی‌ها ها هم خودش رو گم بکنید همین جا باید آرامش خود فشد میگه این شکنجه میکرد شکنجه هم به این ترتیب بود که پاشو بودش رو بایی قیدی مثل این قیده صحافی که دیدیم که میپیچونن به فشار مثل گیره که چیز اینجوری و فشار رو دارن و این ساکت بعد خیلی به آرامی به این گفتش که اگه یه بودی این رو می‌شکنه ها. و مردم که فکر میکرد که اگه پای این نزدیکی بشید که هستم اون شاید باید به با آسمون رفته بشید یه فشار دیگه داده باش شکرد با همون آرامش گفت نگفتم اگه یه فشار دیگه دیگه میشکنه <تصفح> <تصفح> او رو میگن شکنجه و مثلا ببینید اینا دوقات که معنی ما درش نکردیم باستان زج با زه زج دادن زج دادن یعنی منعه بنابراین زجر نوعی شکنجه هست که با من همراه باشه نظران بخواب آب بشت ندار نوم بشت ندار نظران از اتاق بیرون بری مثلا نظران حرفی اون چه ممانعت یعنی کارهایی که مربوط ممانعت این روش بگم ولی حالا زج شلاخ زاده نمیگم زج خب, خب بگم طوری نیست اما اصل اصل معنی رایی بخواد بدونید اصل معنی اینه شکنجه اینه زجرم اونه و این دو تا با هم فرق داره و به همین تحتیب بود که کدا حفظ کنه سایه رو یه بیت نوشته بود که من نمیدونم این بیت که قلط به پای شوق گر این رهد سرشدی حافظ به دست سبر ندادی کسی بدست دست هجر ندادی کسی اینان فراغ گفته بود که به نظر من این قالت به دست صبر ندادی کسی اینان فراغ خواهد باشه بلی خب فهمید این روز به دست هجر دسته یعنی خب یعنی فراغ این دو تا همین فرق بره هجر به معنی دوریه دوری مهاجر آدمی نیست که از مملکتش دور میشد. طارق به معنی جداییه. این موی سرم که دو دسته می کنم میگم فارق باشه. یعنی جدا کننده. لقب خلیفه دوم فاروق اعظم یعنی جدا کننده حق از باطل. و وقتی معنی دقیق کلمات رو بگیریم حافظ میگه که اگر به پای شوق می‌شد این راهو آدم به پایان برسونه کسی این اون جدایی رو به دست دوری نمی یعنی دوری رو نزدیک می‌کرد میومد، ولی هم درست اونتا باید این اختلاف خیلی جزئی دو کلمه رو آدم در نظر داشته باشه اون وقت هم درست در میاد ولی هر همه چیزی خاصی هم بخواد بکنید درست نمی‌شه چقدر از بودش از شکنجه من پیم چنین کرب کرد هنجه من مگر اسباب من زراحش بود به حلاکم بدین سبب به سپور بساری که داشتم بعد از این فکر برمی گرده میگه بهتر اینست که پای مرغ رو بگیرم به که به صفت تفسیلیست با که تر نداره با که تر نداره عملی بهتر. بنابراین صفت ترس میشه. به که در پای مخفی کم دست زین خطرگه به دین توانم اون که تنهارایی که برای من هست که پای مرغ رو بگیرم دیگه هیچ رایگه این بالا یا از گشنگی میرم یا خواب میریم میوسم پایین له میشم یا که میدونم تنهارایی که ممکنه باشه با همه خطرایی که داره اینست که این پای مرغ رو بگیرم اینا با نمیدونست که تا مردم شهر قبل از پای موقع رو گرفتن آنه بدون استثناء به که در پای موقع توی چنده است، دیم قطرگه به دیم طوامم یکی دو نقطه فکر کردم که شما بگم که بعدم یادم درسته طبق معمول گفادم فکر که میشه سه تا عیب پیدا میکنه، اولیش فراموشیه، دوتای دیگه هم. یادم وقتی یکیش این بود که میخواستم بگم که هر این قصه پادشاه میخونیم که مثلا 39 شب فلوزنک بود و بعد طاقت افتاق میشه و که می و بعد گفتیم که تمام مردم شنی هیچی که از مردم شهر به این کام نرسیدن و همه سیافت شدن ولی هیچ لزومی نداره که همه اینا چل شب و سی و یکی شب اول، یک شب دوم، یک شب دهم یکی دوبوم, یکی, ده یکی که صبرش زیادتر بود مثلا پنجا شب صبر کرده باز زنگی گفته که هر دو شب نشده چیز کرده خلاصه. به انواع احسان ممکن است که اشخاص که شخصیت های مختلف دارن به انواع ولی هیچ کدوم به این مفصد به هر حال نرسید یه مثال دیگه بود که میگم حالا خاطرم نیست نفی یاد داشت میکنم که دیگه چون که هنگام بانگ مرگ رسید بانگ مرگ هنگام بانگ مرگ یعنی سهر آمد بانگ خروز موزن میخارگان صبح نخستین نمود رو به نزدارگان که به کتف جامعه بازارگان رو به مشرق نهاد خستو سیارگان باده فرازاوری چاره بیچارگان خوب و طبوع یا معشرم نائمی حال منوچه این تاستانی مورده این که برمزید اما محضنه این؟ به ضرورت شد به که هنگام بانگ مورد رسید مورد و هر وحشی که بود رمی. وحشی زت احلیست و در اون نواره فردوسی من گفتم که دام و دت هر دوشون حیبون وحشی اونتا دت حیبون وحشی زاررس، است یعنی زررسون در و درنده است دت حیبون وحشی غیر است این وحشی است مرغ هر وحشی که بود رمید دل آن مرغ نیز تاب گیره بال برهم زد و دیدید که مرگا اول یه چیز میکنن آماده میکنن بعد بلند باشن بال هم زد و شتاب گرفت دست بردم به اعتماد خدای اعتماد یعنی تحکیه کردن اینا هست که میدونید ولی امد و عمود و اماد یعنی ستونه اعتماد هم همونه یعنی خدا رو ستون گرفتن برای تکه کردن به خدا ستون تکیه دست بردن به اعتماد خدای من قوی پای را گرفتم پا مر تا... بله پای بله قوی پای قوی پایی گذشته اونجا قب... چه چا... احتمال مال مال مال این مال ما رومه بگنیم دیگه بعد احتمال این هست به حال یه چاپ اخیری در روسیه شده من متاسفانه گیر نیوردن ولی نسخهش در بیتی هست ناچار می سیم که بدم یه چیزی برام کنن. یه کانون بیاد درستش کنه بعد دیدن برای اینکه آخرین چاپایی که شده ایناست ای خیلی داره ولی به هر حال پدر مادرش معلومه یعنی نسخه ها معلومه که کدوم کجا، کجاست چیزی آدم میتونه سراغ نسخه بره یا بدون یه چیز بذار بالایش سر روز پایین رو میره ولی از این چاپا معلوم نیست به هر حال ارز کنم که آخرین یه چاپ ریبکا داره دانشمند چک که مرحوم وحیدم ازش استفاده کرده بعد یه چاپم اخیرا در استاد شعردی کرد در شعردی سابقه مرقا گرد کرد و بال گشاد. مرقا به اینکه هسته چند که برمچن زیرش رو نیزن زیر به دلیل اینکه مقاومت هوا نگوشون چون همون مقداری مقاومت ایجاد میکنه و هواپه هم هم هم می بینید که آب هم چرخش باز باشه اشکال نداره که تو هواست ولی چون مقاومت ایجاد میکنه این جمع میکنه کنه برای اینکه مقاومت نباشید اینم مرخ کار می کنه. و دید نظامی رو می بینید که دقیقا توجه داره این نکات مرخ پا گرد کردو بالغشات خاکی را فرود ورچبا سپال صبح تا بن نیمه روز من سفر ساز و او مسافر شد چون به گرمی رسید تا به مهر بر سر ما روان گشت پر بر سر ما روان گشت پر یعنی آفتاب وسط آسمان به گرمی رسید تابش مهر بر سر ما روان و پر مرغ با سایه هم نشستی کرد اندک اندک نشات پستی کرد خور, خور ارتفاع اون کرد و ارتفاع کم کرد مطمئن. تا بدن جای جا، کس چنان جایی تا زمین بود نیزه بالایی نیزه بالای یعنی به بلندی یک نیزه بر زمین سبزه ای به رنگ حریر لخلخه کرده از گلاب و عبیر لخلخه نوعی اتریات بوده همون, همون قالیه و مشت و عبیر و اینا رو گویا به صورت گردی در می که این رو می پاشیدن یا می میریختند که فقط چیز بکنه نوعی خوشش متساعد باشه این رو بهشون رفتن لخلخه عبارت هست از, از چندین زهیدم نوشته چندین چیزی خوش بود مانند مشت و انبر و بانک ممزوج کرده و میبونم یعنی سبزه بود اطم داشت خوش بر زمین سبزه ای به رنگ لخ لخه کرده از گلاب و عبیر عبیر کلمه دیگرش از همون انبر انبر و عبیر یکی من بران مار صد دعا کردم پایش از دست خود نها کردن افتادم تو برق با دل گرم بر گلی نازو و گیاهی نه ساعتی نیک ساعتی نیک چنین یه, یه ساعت چرکه هست ساعتی نیک مندم افتاده دل با اندیشه های بد داده منش فکرهای بد پیش بعد فکرم این که مردی که بالای میل مودی دیگه حالا به لفتان انجام آمدید پایین و توی سبزید مرگته چون از آن مندگی برای سودن منده درسته این خسته خسته به معنی مجروهه یعنی زخمداره خستن به معنی مجروه کردن خسته یعنی مجروه و الان در افغانستان مانده شدی اینی هست یه درست چون از آن ماندگی براسودم شکر کردم که بهترک بودم باز کردم نظر به عادت خیش دیدم اون جایگاه را پس و پیش روزه ای دیدم آسمان زمیش زمین صورت مخفت شده زمینه که خیلی هم در مزامی به خصوص زیاد بکار میده شواره دیگرم هم بکاریم زمین به جای زمین روزه هم وعنی باق میگه باقی دیدم که آسمان به منزله زمینش بود روزه ای دیدم آسمان زمینش نارسیده قبار آدمیش یعنی گرد پای آدمیزاد اونجا نرسیده بود محصول شدید آد... که گرفتار نکبت آدمیزاد نشده بودیم بلی که الان میبینید که تمام, تمام رودخونه ها و تمام... تمام اطراف محل زندگیش آدمیزاد قرف کسافت و پولیشن و آشغال میکنید و عجیب این از که این همه حیبونات زندگی میکنند جاهای مختلف هیچ جور گرفتاری از این دراز ایجاد نمیکنند و همه ای این بازی ها مول آدم هست چیزا هست. ای دیدم آسمان زمینش نارسید قبار آدمی صد هزاران گلش شکفته دارون صد هزار قید که اثرته یعنی بسیار صد هزاران گلش شکفته دارون سبزه بیدار و آب خفته دارون آب خفته هست یعنی سرسدان هست آب آهستگی گذرگی کنید هر گلی گونه گونه از رنگی مون که هر گل رسیده پرسنگی من خیال میکنم نظامی هم با این که نظامی فارسی زبون نبوده میدونید که زبونش زبون شاخهای زبان فهلوی بوده زبان آذری و فارسی رو یاد گرفته با این حال خیال میکنم نظامی هم باز گل رو به معنی گل صحب میکنه نشین که باقع رو یکی یکی اسم زلف داه ظلف سوبل به حلقه ها و را چرط لب قمپلش را بعد لب گل را به ب... گاز برده سمن هر قوان را زبان بریده چمنمالظ می توانید گلار رو همه رو غیرت از گل سر اسم کنید گرد پافور خاک انبر بود زار، زر سنگلاخ گوهر بود ریگ میگه زر بود و درستون برستونم که بیشتر طلای رو که استخراج میکنن به صورت خاک تلاست یعنی خاک رو و طلا به صورت ریزه های ریزه ها ازش میدید اینی که برگید پشمی کرده گرد، کافور کافور هم میدونید ماده سفیر تنگی قابلی کنم خوشمون هم, هم و چیز محصبی هم داره که میدونید که برای مدر کار ما ولی جز ایتریاد به کار می و میگن طبیعت بسیار سرد هم داره گرد کافور خاک انبر بود ریگ زر سنگ لاخ گوهر بود چشمهای روان به سان گلاب در میانش عقیق و در خوشاف عقیق سنگ اندکبه های سنگ سیلیسی به رنگ های بیشتر زرد و قرمز اینا هست شفاف هم نیست و قیمه هزیادی هم نداره در خشاب یعنی مربارید مربارید درقشنده چشمه ای کین حسار فیلوزه کرده زو او آب رنگ در یوزه بیگه چشمه بود که آسمان فیلوزه رنگ آب رنگ از او گدایی کرده بود و در یوزه با کلمه درویش از یک چیز درویش و درویز و درویزه و در یوزه همش یکی هستند سوال کردن و یادا کردن چشمه 2 نثار یوزه که از رو آب رنگ در یوزه ماهیا برنیا آن را آب چون درمهاهای سیم در سیماب سیماب اسم جی است. سیماب آب ازند کلمش می نوییم نویی ولی اسم جی است. کوهی از گرد اون چند گرده اون چه شمی؟ کوهی از گرد اون زمان روترن. پیش از کوه اربو و شاه و قدن مادر ما رو باید می‌نمیزه که شاه هم اسم درخت است یه شیء سر و شاه و قدن صفت که روشنه شاه رو می‌گه درخت بسیار بلندی است اما راجع به خدنگ بنده یه توضیح مختصری بدونم که من خدنگ اسم درخت است و این درخت خاصیتش اینه که هم چوبش چوبش دو خاصیت زده هم داره یکی اینکه که چوبش بسیار سبکه دوم اینکه بسیار محکم و به همین دلیل دو مصرف جنگی داره یکی تیر, تیر خدنگ که شنیدید همه تیر خدنگ تیری بوده که از همین چوبه تیر رو از درخت خدنگ میگرفتن به این استحقامش و سبکیش که خیلی بیشتر برد داشته میتونه سراخت یکی هم زین خدنگی زین رو شما زیر ساختش رو اگه دقت کرده باشیم دیدین اگه ندیدین زیرش چوبندی داره این این ریختی که شما زین رو میدینید زیرش یه چوب هست به حالت نعلی که وضعی دسته داره که اون بالای خواچ زین از اینا یکی این طرف یکی هم طرف دومه که دیگه اون بالا رو نداره بعد اینا رو به وسیلی قید وسط به هم ربط میدن ترتیب میدن به طوری که مثل چوب بندی روی اسب یا خر هر حیبونی که ساخته باشن بگیره و زیرش رو میپوشونن روش ه ولی این چوب باید خیلی محکم باشه برای اینکه نشکنی چون تمام فشار سوارکار روی اون و اون چوبه روی پشت حیغون و سبک هم باید باشه که حیغون ازیاد نکن به همین دلیل مصرف مهم دیگر چوب خدنگ برای ساختن زینه و زین خدنگ هم در شانامه ازش اسم بسیار بردشد و مال ایران نیست مال نواهی مغلستان و چینه مال شرقه طرف های تاجیرستان و عصبتستان و یه جایی هست که تیر میساختن و کمان میساختن اون نواهی میستر شهرت داشتن و اصلا تیر و تیر اندازی چیز سلاح خاص اون جمعه هم. کوی از گرد اوز و رنگ بیچه کوه، سر و شاخ و خدنگ، همه یاغوت سرخ بود سنگش سرخ گشته خدنگش از رنگش، از رنگ اون یاغوت صندل و اود، هر سوی بر پای سندل و اود هر دو اسم درفت و هر دو چوبشون خوش بود منطقه صندل بیشتر مصرف طبی داره چوب سیاه رنگیست. مصرف تبی داره اود چوب بسیار سست سرخ است که می و چون دوامش هم خیلی کمه همراهش میکنن با شکر براده اود رو همراه شکر میزن تو آتیش برای اینکه دوامش زیادتر بشن گذشتگان بوی غنصوته بوی کرامل رو هم دوست داشتن حافظ توی اون قذل بسیار معروض که ازار در فهمتوندن بیا تا گل برفشانی و می در سافر اندازیم این فرمایت که شراب عرقوانی را گلاب اندر بده ریزیم این تو قدر شراب گلاب نیست نسیم ایت را شکر در نجمر اندازیم با خود همراه سندل و اود هر بر پاید باد از اون اود سوز و سای صندل رو می بوی خوشش فراکنده بشه و مصرف طبی ارز داشته میگه پیرمردی زنه از می پیر نالید پیرزم سندلش همی مالید قصه سعدید و هم صندل رو برای سردر به کار می بردن مصرف تبدیه بعد از او چو و سندالس نور سر در سرش تشاوردے رو که عرض کردم جن حوراست و این رو عرض کردم جن عینا است و بعد شده دو حور این دو تا این به در فارسی به صورت مفرد به کار اند اینو قبال کردم هور در سر در سرش تشاوردے سرگزیت از بهشت تشاوردے سرگزیت یعنی مالیات سرانه این گزید همونه که در عربی معرب شده جزیه جیزیه همین گزید و سرگزید یعنی مالیات سرانه که به هر نفر تعلق میده هور سر در سرشتش آورده سرگزید از بهشتش آورده درم آرام دل نهادشنام باق ارم رو هم که قبلا ارز کردم قدمتون اگر فرصت تون باشه در لغتنامه ده خدا یا لاعقل در دارت المعارف مرحوم مصاحب این ارم رو باق ارم رو و نگاه کنید به تفصیل به دلیل اینکه خیلی زیاد در شعر فارسی کار رفته به بهتر از که گذراد چه پشنس. ارم آرام دل نهادشنام اون باق خوندمینوش مینوی یعنی بهشت پنده مینوش، چرخ مینافا مینافام به نظر من بهتر من مینو فاطمه نوش من که دریافتم چون جایی شاد گشتم چون گنج پیمایین خیلی خوشحال شدم حال آدم که سر امیداله جایی رو از نکویی در او عجب ماندم بر وی الحمدلله کندم که چشم زخم دیم گرد برگشتم از نشیب و فراز دیدم اون روزه های دید و نواز میوه های لذیذ میخوردم شو که نعمت حدید میکردم حدید و لذیذو رو میبینید که نظامی با هم قافیه او. این قاعده دال بعد باید بنده خدمت شما بگیم تا دیگه مشکلی نمانیم ارز کنم که این رو لطفان تا بعد توضیح شو بدم میگه آنان که به فارسی سخن میرانند آنان که به فارسی سخن میرانند در معرض دال زال را ننشانه ما قبل وی ما قبل وی ار ساکنه ما قبل وی ار ساکنه جز وای وای رو مثل تو گیومه ما قبل وی ار ساکنه جز وای و بعد دال است وگر نه زال محجم خانه. ظالم و مج هم خانه مو جن یعنی نقطه دار گستینه صغ که دال بعد حرف قبل از دال الف و واو نباشه تو ساده است با ساکن باشه مثلا قند اون آخرش دال ولی بعد چون قبلش علفه، زالی دود، زالی بود، زالی اما این قاعده محسوس فارسیه بنابراین کلمات عربی که انگلیزی هست حمید، مجید، اینو داله بنابراین مجید و حمید رو با دید و رسید نمیشه قافیه کنی حالت چون داله، اینه زالی. ارز کنم که یک قصیدهی داره مرحوم ملک شعرهای بهار در جواب مرحوم علی عبد رسولی نوشته علی عبد رسولی شعری بهش گفته و بهار در تبیید بوده در اسمهان و داستانش درازی که حالا نمیخوام بگم بهار جوابی دادی در اون جواب بگه که به که در غم ایام یا علی گفتم به روز باز علی به دارت رسید به راستی علیا این بلند چامعه چه بود که از خلال ستون ستاره میتابید عادی نظمی چون چون جای زر سره لطیق نصری چون شده های مربارید بدین کتاب بدین قصیده تو واسکدی شدی همسر و وزن کتاب یعنی نامه برابر شدی به ابن امید ابن امید امید عربیه بعد چون امید رو آورده داله قد درست نیست سزای قافیت دال زال خواهم گفت نه بلکه ابن امید است مرترا تلویز تلویز بازاله یعنی میدونم که این دالو رو نباید اینجا آورد منظر میکنیم شب چه نعمت پدید میکردم، میبه های لزیز پدید فارسیه، قبلشم یست، فنواری زاله باز یه قصیده داره بهار، قصیده خیلی درجه یکی درام شب و شراب، شب خرگاه سی احزاد و دروی بیارانی و سر کرامه من خرگه برو کشید روز از برون خیمه درستاد و جال جال آن سقف اش را امدا بسوزنید گفتی کسی در روم یکی جرد آبگیر سی هزار نرگس شهلا پراکنید چه و چه و چه از شراب میگه بعد میگه زو هر جبان دلیگ رو بدون هر سبین یعنی ناخوش زون هر جبان دلی رو بدون هر سقیم به زون هر ملون شاد و بدون هر خورش لذیذ لذیذ رو با این کشید و رسید و دوید و دمید قافیه کرده این دال و زال به این ترتیب قافیه می شده البته این فقط در یک قسمتی از ایران بوده قسمت های شرق این ها این رو کاملا مراعات می که دال رو با زال قافیه نکنن ولی اسمت های قردی اینا و توجه زیادی نداشت اما به هر حال اینجای که میبینید که بیوه های لذیذ میخوردم شکر نعمت پدید میکردم این درسته و همین اگر اگر کلمه آخرش دال باشه و قبلش حرف ساکن باشه و الف و و و یه هم نباشه در حیدت الف واو یعنی حرکت یعنی یعنی ساکن بشه غلطه ما قبل ساکن بشه چون الف واویه خودش حرکت نیست نمی‌دونید اگر ساکن بشه چیز میشه مثلا بورد توله ورت گورت توله وقتی استابلش ساکنه الف واو جم ولی دیتی رسید چه نی مانیزار خوب یه سری مستی استراحت سلام میولد. یا رو استاد. خب دوستان باست من تحجر کنم به تر ندیر اومدیه خب آقابت رخت بستم از شادی زیر سر بیچ و سر به آزادی تا شب اون جایگه قرارم بود نشدم گر هزار کارم بود اندکی خوردم اندکی خفتم در همه حال شکر میگفتم چون شب آرایشی دیگر ساق کهلی اندوخت درمزی اند قرمزی انداخ بر سر کو مهر تا ته تا زهره سو چون شکوفه شکاو بادی آمد ز رشف شاند غبار بادی آسوده‌تر ز باد بهار ابر آمد چو ابر نیسانی کرد بر سبزه ها دورفشانی راه چون رفته گشت و نمزده رفته گشت و نمزده شد همه راه از بوتان چو بوت شد دیدم از دور صد هزاران هو از من آرام و سابری شد دور یک جهان پرنگار نورانی روح پرورد چو راه ریحانی هر نگاری به سان تازه بهار همه در دستها گرفته نگار لب لعلی چلاله در بستان لعلشون خونبه های خوزستان دست و ساعت پر از علاقه زر گردن و گوش پرز لولوی تر شمعهایی به دست شاهانه خالی از دود و گاز و پربانه آمدند از کشی و با هزاران هزار زیبایی بر سر آن بطان هور سرشت فرش و تختی چو فرش و تخت بهشت فرش انداختند و تخت زدند راه صبرم زدند و سخت زدند چون زمانی بر این گذشت ندیر گفتی آمد مست پهر به زیر آفتابی پدید گشت ز کاسمون ناپدید گشت از نور گرد بر گرد او چهور و پری صد هزاران ستاره سغری هر شکر شمعی اندر دست شکر و شمع خوش باد پیوست. پر صحی سرب گشت باغ همه شب چراغان با چراغ همه آمدون بانوی همایون بخت چون عروسان نشست بر سر تق عالم آسوده یک سر از شپ چون راست چون نشستو قیامتی برخواست پس یکی لحظه چون نشست به جای برغه از رخ کشود و موزز پای شاهی آمد برونز تارم خیش لشگر روم و زنگش از پس و پیش رومی و زنگیش چو صوب دورنگ روم داد و بزمه زنگ تنگ چشمی ز تنگ چشمی دور همه سروی ز خاک و او از نور بود لختی چو گل سرفکنده به جهان آتشی درفکنده چون زمانی گذشت سر برداشت گفت با محرمی که در برداشت که زنا محرمان خاک پرست می نماید که شخصی اینجا هست بسید سر بار آقا <تصفح> بله داستان استراحت و بعد از اون مراحتی شب بالای میل بعد میگه که بعد اینکه گشتم اونجا رحمه رو دیدم و امن و امان است و گل و گیاه و سبزه و زیبا و اینا آقابلت رخت بستم از شادی زیر سر بیمیم تو سر و آزادی یعنی خودم مثل سر به آزاد رفتم زیر یه سر تا شب اون جاگه قرارم بود نشدم شدن منی رفتم نشدم گر هزار قارم بود البته میگه که اگر هزار کار داشتم جایی نرفتم ولی در حقیقت هیچ کاری نداشت جز استراحت بیچه ریمان تا اون جاگه قرارم بود نشدم گر هزار کارم بود اندکی خوردم اندکی خفتم در همه حال شد رو تا شب شد چون شب آرائشی دیگر گم کوهلی، کهلی اندوخت قرمزی بینید اندوخ تو انداخ چه قشنگ آورده کهل به معنی سرمه است و کوهلی یعنی سرمهی دیگه شب سرمهی رنگ میشه و سرخی رو میاندازی نقطه جالب این است که قرمزی خیلی مورد قدیمی از یعنی کلمه قرمز ترکیه پارسی میسه پارسی سرکه و قرمزی قرمز لفظ ترکی رو که اینجا به کار برده بابا از موارد خیلی قدیمی است که قرمز به جای صرف کار رفته و شاید دلیلش اینه که اونجا یه مدتایی مشهور بودن با ترکان و لغت ترکان و اینا آورده در هرهاد، کوهلی اندوخ، قرمزی انداخ، شاب شد بر سر کوه، مهر تافده تاب. دخترها رو میگیدنم میاندی میگه مهر تابیده، خورشید تابیده، از سر کوه تاوید زهره صبح، چون شکوفه شکاف باز اینجا چند تا بازی کرد یکی زهر و زهره به معنی گل و شکوفه است در عربی نمونه خیلی سوش کلمه زهرا زهرا که اسم دختر از رسول اکشمه معنی شکوفه و معنی گله در این حال در این حال زهر شکافهان، اونه موردن دیگه در فارسی که الان زهرن هم گفتن میگه مثل این بود که صبح شکفته شد صبح, صبح آقا می شکافه یه دفعه روشنایی همه عالم رو از این تاریکی میگیره حالا هنوز شبه می خواهد زیبایی میاره بکنه میگه بر سر که شب شد و خیلی شد مهر خرشید تابنده ای اثر کوف تابش خود کن زهره صبح مثل شکوفه شکاف بعد خورد خورد توصیف میکنی نمیگه چه خبر شد بادی آمد سره پشان خواه بادی آسوده ترز باد بهاد برای که به هم نریزه غذایه رو خیلی. آرام و نرم آمد گردقوهار و جاروی کن آمد شد عبر آب، نیسانی بعد بر سبزه ها درفشانی نیسان اسم ماه رومی به مطابق قربی ماه اشتماه ما ماشه. هنی الان ها که سوریه و لبنان و ترکیه و اینا روم شرقی بودن می میگه بیزانس بودن می علاحت در سوریه کسانی هستن که کاملا رنگ روشن دارن چشم آبی و ماه های بور و اینا عربی عربی زن. اینا مردم رومی شرقی هست و ماه داشتن که های رومی بهش میگن اینا باز در دو بیت من این دو بیت رو میگم باید حفظ کنیم تا یادتون میمونیم ناچار میگه که دو تشریم نوم ت تشیم یه نوم تشریم دو تشریم و دو کانون پس پسان و, شباط و شباط با تای دست داد و شبات و شبات شبات دو تشریل و دو کانون و فسانگر شبات و آذر و نیسان و سی ایار هست با علف بازال ام. دو تشتین و دو کانون و پسان گه و آذر و نیسان ایاره است هزیران و هزیران هی حدتی زه همین هزیران و تموز و تموز با زه تموز و آب و آب هم مثل آب خوردن هزیران و تموز و آب و ایلول ایلول هم نگه دارش که از من یاده دارم اسم ماهای رومی بباره میخونم برای اینکه ای دوستانی عقب افتدن یا بچه <تصفح> دیگه بچه که کاری نمیشه بخونم ولی دیگه دو تشریم و دو کانون و پسانگه شباط و آذر و میسان ایاره حزیران و تموز و آب و اییلول نگه دارش که از من یادداره پس میشه ماهایون میشه تشرین اول تشرین دوم مثل مثل رول اول ستان اینه تشرین اول تشرین دوم قانون اول، کانون دوم شباط، آذر نیسان ار هزیران تموز آب ایول نیسان گفتم میفته به اردی بهش بنابراین آزار که در فارسی بیشتر روش میگن آزار و آزال، آزار مطابق ما ها فروردید دارم بله، حافظ داره آزاری برامد باد بعد نوروزی وزید سعدی داره توی اون باند دادان که تفاوت نکنه لینونه ها میگه این هنون زد، ولی بله آزار جان افروز آزار وزار این هنوز اول آزار جهان افرود زرست باش تا خیمه زند دولت نیسان و ایار نیسان جنبه مذهبی داره گفتن بارانی که در ما نیسان به باره شفای درد ها هست و چه هست و چه هست و چه هست و عوام و ناس بشکن بارون لیسون بارون لیسون همون بارون نیسانه یعنی میگرفتن تایی تشریفاتی رو دعا میخوندن و فاور میکردن و اون پردن بر پرتیبش رو من گفتن بله میگه پس چی؟ بله من که داره میگه ما آزار میاد به فروردین دیستان هم میاد بوردی بهش دیگه باقیش میشه حساب کردی باقیش هم به میگم البته ولی دیگه دقیقاً میشه یه ماهش میدونی به کدوم میخوره باقیشون میشه حساب کرد دیگه ارز که ماهای تشریل و کانون ماهای سرده با تو شعر فارسی هست گرم کن خرگه و میخواه گرم کن خرگه و می که آمد پشتیم از رخ ساغی گه لاغلستان گه نسرین خرگه گرم به که نسیم آوید سر باده لل به که چمن شد زرین با پری رویان برزید کنون باید میر که مه کامون با شاک سمن کین. کو چون دیده یعقوب به این صحب یعنی سفید شد کوف چون دیده یعقوب براه این صحب هم همچنون دم فرهاب زهجر شیدین نظیر اینا زیاد و همشون بعدم میسان و بعدم آزار و بعدم تموز که میفته مرداد ما سعدی باز در گلسون داره اون برف است و آفتاب تموز اندکی منده خارج غیره هنوز. اینا باز به همین دلیل که خیلی زیاد استعمال داره در عدب فارسی من دارم میگم اگه من ما کاری به ماهای رومی که زیلن ندهدیم اینجا. اصل مطلب اینست که میبینید که از قدیمترین عدمار این ماها همطور مطرحه و بحث شده باید بدون که یکی مثل همینجا عبری آمد چون عبر نیسانی یعنی عبر اردی بهشتی کرد بر سبزه ها راه چون رفته گشت و نمزده شد همه راه از بطان چون بطکده شد دیدم از دور ست هزاران بود ست هزاران که با سیغه جمع میره یه ادهه بسیار بسیار زیاد دیدم از دور ست هزاران او، که از من آرام و صابری شد گود یک جهان پرنگار نورانی نگار رو قبل هم ارسکن نگار رو نقاشی و بعد دستاشون رو نگار می‌کردن نگار کردنم هم از این بوده که هنوز هم توی روستاهای جنوب لارستان و ها احیان هنوست هست در پاکستان و هست یه دستکشی چرمی دستشون می‌کردن که این سراخ داشتیست سراخ‌های شکل گلووته بود به قشنگ و, و خشکل اونا این دست می‌کردن روی این دستشون رو هنامی باستیم می وقتی که دست کش جای میوردن، همه رنگ گرفته و دست کلو بسیار زیبای قشنگیه هم روش یعنی هم پشتش نه هم کف دست است این رو میگن دست نگاری اینکه سعدی میگه به دستهای نگاهرین چو در حدیثایی باید هم کانوها که کشید چون که زیبا باشه و هر قیمتی هست به رو طرف می‌کشن یه جوری اینه می‌گوشتر ای نیا رو باید بلاخره به خورد طرف بده یا یعنی چیزشون بله، به هر ترتیگی هست دستهای نگار کرده بسیار زیبا رو سعدی میگه به دستهای نگاهرین چو در حدیثایی هزار در ببرید زین ها را زین دستان دستان یکی یعنی این دوتا دست که دل میبرو یکی هم دستان یعنی مکش و فرید یعنی زن ها را زین اشپگری و لبندی ارز کنم که این نگار با سعدی میگه حسن دلاویز پنجه ایست نگاری تا به قیامت بر اون نگار نماند این رنگ هنم و این دفید نگار پاک میشه دوباره وارد میکنم بعد کم کم پاهاشون من خونه ما پاه و دست هرد رو زینت کرد. کم کم نگار اصلا معنی محشوق میشه برای خاطر اینکه هیچ کسی جز زنان جوان زیبا دست نگار نمی که بنابراین نگار شده معنی هم همینجا یک جهان پر نگار نورانی نگار این دختر زیباییه یک جهان پرمگار نورامی روخ پرور که راه ریحامی راه به عنین شرابه یکی از اسمای شراب چون شراب هم از هزار تا اسم داره یکیش هم راه ریحانی یعنی گل بوم که بومی گل بوده هر نگاری به سان تازه بحار تازه بحار یعنی شکوفه تازه بحار خواهنی شکوفه است. هر نگاری به سان تازه بحار. همه در دست ها گرفته نگار حالا نظامی نمیگه چقدر وقت می که اینا بیشیند این عملی ها تو میگه بحار کرده بودن. هر نگاری به تازه همه در دست ها گرفته نگار لب لعلی، تو لاغله در بستان لعلشان، خونبه خوزستان در دوره نظامی خوزستان خیلی درآمد عظیم داشته و این درآمد عظیم از کشت نیشه کرد شکر اصلا به طور کلی در فرومی گذشته جزء لکس به حساب می آده بگذنیده از حالا که یه من سی سن نار می فروشتن و کسی محل سجمش نمی زده شکر چیزی بوده است که به ارمغان می آوردن. کم بوده، نبوده سعدی اول پوستانش اینو میگه در اقصای عالم بگشتم بسی، به سر بردم یا ما هر کسی کمتو زهر گوشه یافتم زهر خرمنی خوشه یافتم چون مردان شیراز خاکینه هایت نگیدم رحمت در این خواهدگاه با. شیرازی ها باد تولای مردان این پاک بوم برانگیختم کافر از شام و روم شیراز به دل گفتم از نصر قند آفرم به دل گفتم از مصر قند آقرند برای دوستان ارمغامی برند مرا یک تویی باغ شد از قند دست سخنها یه شیریم تر از قند هست نه قندی که مردم به صوبت کرند که ارباق معنی به کاغذ برند بعدم این دوستان ساختم در قرن شیشم خوزستان خیلی نشیکرد کرد در قرن هفتم در مصر نهی شکر خیلی زیاد کش شده در زمین اینه بازتون برسونم که زمینایی که کشت میکنن چه کشت میکنن و چه اونایی که یه خود بد کشت میکنن و آب تحت الارضی خونت بالا آفتاب جاهایی که زیاده این آب رفت ای آبی که میدن به کشت که زمینونه بخار میشه آبش میره، بالا ولی املاه محلو در آبی نمیره، ولی میمونه میمونه، میمونه، میمونه، این زمین کچل میشه دیگه قابل پیش ما، وقتی که انگلیس ها در هندو پاکستان بودن، یک وجب زمین کچل در تمام این نایه نبود و سالی دو بار ازش حاصل بند میشه. وقتی من بین ساله 51 تا 55 اونجا بودن، با تحریکی بیرستم شاید یک سردبوم زمینه کچد بعدم یکی از پیرمردهای درجه یک اونجا رو که دیدم پیر حسامدین راشدی خداش رحمت کنه مرد خیلی درجه یکی بود دوما در دوره انگلیسا اینا آب تحت الارضی برده بودن تا درمت زیر زمین کانال کشی کرده بودن کشی زمین شیرین کرده شسته بودن, بودن بردون زیر زمین هه این کانالایت که اینجا شیکه هست آب شد تو سهرات فردا اون تیکه اون ور تو که کرد شیکه هست پس فردا فلا ردخونه تو که تمام سهرات گرفت که مارقاوی میاد توخ میذاشته و ماهی اونجا بچه میذاشته اینه اصلا اصلا اصلا اعتناشون نبود در نزیره آب تحت الارضی ماد بالا ده مترو، نه مترو، نام، 8 متر مترو، هشت مترو، هفت ترسید رسید همسطت زمین یه بارون شدید تا اومد من راهالپندی بودم تمام شهر شد آب چون زمین زنجا دیگه زمین اشباه شده، آب فروکه بره. ما خونه مرهنگ بود داریم، بریم دیدیم که جانی نیست، یا با که کول کن کنه ورداره بیاره، یا مثلا چوبی، سنگی بزرن، اینا بیارن یه مردی هم بود از شمال ایران رئیس اون کنو بود بود اجازه بخورمین، این آبو بکشیم، بکشیم، مای تو خوجه بریزیم اینو نگاه که، من همه برایتا هم، خوجه برایتا هم، خوجه این میمون مثلا دو ماه، این آب یه وچب آب میمون تا خورخورد آفتاب بخارش کنه ماهی بچه میذاشت و بچه همونه که بزرگ شدن یه هم رودخونه همونه که نه اونجا میموردن و به مرغاوی تخم میکرد و تخم روژهش بزرگ میشد و میرفت و روز آب اونجا بود بریا شد و بعد پشش میشد خب این همه این انلاح میمورد اینجا این زمین بعد از زمینای می زمینه خوزستان هم که در دوره نظامی ده جا اشاره میکنی در مورد شیرین میگه به موسی دختر خوزستان حالیه. یعنی یک نش می‌دونم دختر خوزستان قیمت داشت و داخل خوزستان گفتم که نه تنها پولی بود اصلا محصولش شکر بود. موسی شیرینه. من هم تا الان سرچشمه بودم. بعداً من یادم سال 23-24 که تو مجلس کار میکردم مسئله مطرح شد. تمام خوزستان بیابونه برهوت بود اصلا بعد هم میگفتم شرکت نفت هم چی کرده این کار کرده این کار کرده من نمیدونم شرکت نفت کردی یا نکرده اما به فرض اینکه او بخواد بکنه او مردم چرا گذاشتن بعد نکرده برای اینکه قرنها همینجور با بیگسی و بیهالی و اینا گذاشتن این زمین شور کردن او بلفته بعد هم اگه بکشنو آب بکشنو دو مچواد آبا بالا خب نمیاردن حالا خب انگلستان از خدا میخواست و حرفی نداریم داشتیم که اونا که طبیعه مهربان تا از مادر که نمیشن چه بهتر که اونجا بیابون باشه اونا برکشی خود که من از اون که توقع مهربانی که ندارم اما این که تصور همش به این که این کار این کرد اون کار این کرد اون کار اون کرد ما هیچیست ما هیچه عیبی اصلا در وضورمون مطلقا نبوده و دلهم دلهم دلهم. نیست بالحمدالله نه این درست نیست به هر حال این مسئله خوزستان و داخل خوزستان که این همه راجبش حرف زده میشه نه شکر بوده است و شکر بسیار گرون بوده حالا که این مطلب مطرح شد چند تا لغتم هم بگم که شکر که کلمه اصلی است در تمام زبان های و حتی عربی نام همون شکر رو گرد سیک در فرانسه و مذایرش این کلمه اصلی مال اون محصول که از می میگرفتم قرنها و اخیراً از چواندارم میگیرن بعد از این چیزای مختلف میساختن که حالا ما الان مثلا نبات رو میدونیم نبات رو میدونیم قند رو میدونیم یه مقدار چیزایی دیگه هم بوده که حالا ما کهیتیش رو درست نمیدونیم ولی اسماش رو میدونیم یکی ابلوج ابلوج با الف باز نوعی قنده که یعنی قندریز یعنی کسی که با شکر عملیات می ابلوج بوده تبرزت بوده با تا تبرزت این یعنی نباد فیرازی ها نمک ترکی رو میگنه نمک تبرزد یعنی بلوریست مثل نبا تبرزده فانید فانید یا فانیز هم نوعی نوعی خنده شاید این چیزایی که ما الان به عنوان آب نباد آب نباد خیچی یا در اصفهان ها نیشید راست میخونم نمک کلکی گرد گرد، اینا اینا انواع قندایی که بسیارشون از خیلی قدیم بوده و همین ابلو و تورزد و فانی، دوخند و شکر و اینا همه پشمک خوب نوابا یکی پشمک, پشمک خوب خیلی تازه هست بل آب نبات هم هم یکی از ایناست در حال اینا جا داره که آدم بره تحقیق مخانی که کدوم اینا از چی بوده و چی می گفتن و اسمش چی بوده و بعد چی شده اینا مسئول که دوستان باید برن دنبال و هر کنون حاصل بکنن. یکی از این کار رو میگیرم بکنن اگر بتونن جالبم خوش آیندی. من دارم کار بکنن کافی که بکنم این که خودم نمیتونم بکنم دارم که میکنم ولی دوستان دیگه میتونن دنبال این مسائل برن بر حال، لب لعلی چو لاله در بستان لعلشان خونبه های خوزستان وقت درصم لعل لب رو به لعل تشبیه کرده لعل به لعل تشبیه کرده و بعد می خونبه ها خونم باز قرمسه لعلشان خونبه های خوزستان دست و ساعد پر از علاقه زر علاقه یعنی چیزی که آبیزون بکنه معلق یعنی آبیزون علاقه یعنی چیزی که چیزی دست و ساعت، ساعت این بخشه انت آرنج تا موچه دست روش دست و, دست و باز علاقه زر گردن و گوش فرز لولوه تر لولوه تر اینی آبدار با ترابرد شم هایی به دست شاهانه شم شاهانه و شم گدایانه با هم فرق بشته شم گداها رو از پی اولاغ درست میکرده <تصفيق> اصلا پی اینجوماتی که می یا اینجومات که می از جنب خر و اصفلینا رو چربیشون می گرفتن شم برد ما می که می بلند و می‌سوخت و دونگی و وساطی و من و در محره بود و شم‌های پیهی شم‌های پیهی بزن ما شاهانه را از موم می‌ساختم موم اصل به همین دلی بسیار گران بود چون موم به مرات از خود اصل گروه‌تره این زنبور اصل مثلا پنجا گرم اصل درست میکنه یه گرم موم و در روزگار ما یه شمی درست میتردن شم گهچی بشمی بفتن که این شم گچی، فرافین جامد بود پارافین جامد همون خاصیت موم رو داره ولی قبل کافریت. از این که شم کافوری اون حالا عرض میخنن حالا اون, اون عیزاییست که توش میزدن ماددش این از که کنن که با پارافین جامد اینا اینا مواد هست که دیر سوزه و زیاد آتش نمی‌کنه زیاد نمی‌سوزه زود ذوب نمی‌شه دود نمی‌کنه آهسته می‌سوزه اینی که می مونه الانم هنوز شما بعضیش آتش می‌کنه بعضیش آتش نمی‌کنه تا آخرش می نمی‌سوزه بعد فتیل‌ها هم ترتیباتی دادن تا حالا فتیله راست نیست یه موادی از نوع اسید که اینا تشخیص می‌کنن فتیله راست نیست و اج نمیشه که تمام مساله و مواد صفتی شم و زوب کنه و, و ویزه پایین و کسافتگاری دوده به هر حال، بعد شم اشاهانه از موم بوده که مثل پارافین میسخته. بدون دود، اولا دوم این که در این شم موقع